سحیفه معرفت شرح دعای هفته هم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه هجده اسم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صل الله علی نا و آله تیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارزین در ادامه بحثمون در شرح دعای هیبده از صحیفه سجادیه که مولایمون امام سجاد سلام الله علیه به ما درس میدادند از خدا بخواهیم کمک بگیریم دشمن تعالی خودمون را که شیطان است بشناسیم راه ورود شیطان به دلمون رو بب... بدانیم و ببندیم و اگر شیطان در دل ما نفوذ کرد چه می کند؟ آنها رو هم شناسایی کنیم و طریقه خنسا کردن و از بین بردنش رو هم متوجه باشیم. از جمله مطالب این بود که حضرت فرمودن اگر شیطان در دل ما نفوذ کند به تصویل مطالب باطل می پردازد. یعنی باطل را می آراید تا حق جلوه کند و با جلوه‌گری و زرق و برق دادن به باطل ما را بفریبد ما در مقابلش چند نکته را حضرت اشاره کردند یک معرفت پیدا کردن دو قدرت خیشتنداری در اثر اون معرفت در مقابل تسبیل شیطان سه آگاه شدن به اینکه شیطان کلک میزند مام چگونه حیلگری کنیم چهار عده ای که در برابر کارهای شیطان نیاز داریم اینها رو هم از خدا بخوایم که به ما الهام کنه و اینها رو فراهم کنیم در ادامه این مطلب حضرت این سخن رو میفرمایند به خدا عرضه میدارن و ایغزنا عن سنت القفلة به رکون علی و ایغزنا یقزه یعنی بیداری ایغزنا بیدار کن ما را عن سنت القفلة سنه چرت زدن خواب رو میگن حتی اگر خواب اندکی باشد در آیت الکرسی هم میخونیم لا تأخذه و ولا نوم نومی که خواب است سنه هم همون چرت زدن و خواب اندک رو میگن و ای غزنا انسنتل غفله غفلت رو حضرت مثل خوابی میداند ولو یک چرت زدن باشه یه اندک مثلا فرض کنید به خواب رفتن باشه از خدا میخواد که خدایا از همین خواب غفلت هم ما رو بیدار کن اول این قسمت دعا رو دقت بفرمایید ممکنه کسی به ذهنش خطور کند مگر یک چرت زدن و یک خواب اندک چقدر میتونه خطرناک باشه؟ میگیم جاشو در نظر بگیرید یه وقت بنده پشت میزم نشستم تو اتاق کارم مشغول کارم حالا یه لحظه چرت بر من غلبه میکنه ده دقیقه یه نیم ساعت یک ساعتم این خواب طول بکشه فرض کنید چندان زرری نمیکنم ولی یک زمان در حال رانندگی هستم جاده پرپیچ و خمی که خطرناکه در راهای حولناکی هم سر راه من قرار گرفته کمترین بیتوجهی ممکن است این اتومبیل رو به ته در ره ببره اینجا ممکنه کسانی احساس کنن من حالت خابالودگی دارم و چارهی هم نیست مثلا دارم رانندگی میکنم ممکنه تو اتومبیل بغل دستم بشینن هی تذکر بدن هی سخن بگن هی مطالبی بگن مانع بشن که من به خواب برم چون همین یه لحظه به خواب رفتن ممکنه حادثه درست کنه مسئله قفلت نسبت به حقیقت همین طوره ما در مسیر زندگیمون گاهی یه های باریک و خیلی ظریف و کوچکی پیش میاد که اگر بیدقتی کنیم ممکنه لحظه خاصی ما بیدقتی کردیم ولی یه مدت طولانی این مشکلش برای ما باقی بمانه روز آشورا هم جناب خور درود خدا او باده در این شرایط قرار گرفت هم عمر سعد که خود را به خسران دنیا و آخرت مبتلا گرد در این شرایط قرار گرفت. عمر صد از خانواده بنی هاشم بود با امام حسین علیه السلام نسبت فامیلی هم داشت شب آشورا امام درخواست کردند میخوام با عمر صد خلوت کنم و سخن بگم در یک خیمه خلوت کردن چند تن از محافظین عمر صد محافظت از عمر سعد و به عده گرفتن چند تنم از یاران ابی عبدالله علیه السلام محافظت امام حسین رو حدود دو ساعتی به تعبیر زمانی ساعت ما نقل شده با هم سخن گفتن مطالبی که امام حسین به عمر سعد فرمود خیلیشم در کتابها برای ما نگاشته شده ولی هرچه امام فرمود غفلت عمر سعد تصویل شیطانی برای عمر سد یعنی زینت داده براش به حکومت ری میرسی ملک ری پیدا میکنی این تصویل شیطانه حیله شیطانه کیل شیطانه که من چه قدرتی میرسم امام حسین علیه السلام میخواد در مقابل بیدارش کنه میگه از این قفلت درا حکومت چند روزه دنیا ارزش این که از رحمت خدا دور بشی خدا مستحق عذاب الائی کنی دستت به خون امام زمان و فرزند پیغمبرت آغشته بشه نمیارزه خور میگیرد بیدار میشود و لذا انگونه تغییر میکند عمر سعد در قفلت خود باقی میماند اون نتیجه برای او میشه قفلت خواب غفلت ما خواب ظاهری معمولی داریم الان بنده که حرف میزنم با شما سخن میگم شما سخن بنده رو میشنوید کتابی میدارم قلمی بردارم احیانا چای مینوشم کسی صدام میزنه جواب میدم تمام این عکس العمل نسبت به شرایط اطراف خودم بر مبنای همین بیداری ظاهری است حالا اگر خواب سنگینی مرا فرا گرفت جا خوابم گرفت شما صدا میزنید نمیفهمم کتاب مفیدی اینجاست که میتونم بهره ببرم من در اثر خواب بی بهره میمانم یه معلم قویی سخنان بسیار ارزنده مفیدی رو الان بیان میکنه ولی چون من خوابم بهره از او نمیبرم، لازمه استفاده از وجودم در بهرمندی از اواملی که در اطراف من قرار داره بیداری ظاهری منه اما بیداری مهمتر بیداری روحی و فکری و اندیشهی و قلبی انسانه که انسان بیدار باشه در خواب قفلت فرو نرفته باشد سعدی در گلستان عبارت زیبایی دارد میگه حرم در پیش است و حرامی در پی اگر خفتی مردی و اگر رفتی بردی حرم در پیش است و حرامی در پی فرض کنید میخوام برم مکه حرم در پیش است دارم به سمت حرام حرکت میکنم حرامی راهزن دزد در پی حالا من خوابم برده خب من خوابم حرامی هم داره به طرف من میاد ممکنه در اثر خواب بودن من به من برسه مرا بکشد و انوال منو برداره حرم در پیش است و حرامی در پی اگر خفتی مردی اگر رفتی بردی حرکت بیداری میخواد خفته که حرکت نمیتونه بکنه ما اگه بخوایم در مسیر کمال انسانیمون پیش بریم باید از خواب قفلت بیدار بشیم بدانیم که هستیم کجاییم در چه شرایطی هستیم به کجا باید بریم چه شرایطی رو باید در خودمون ایجاد کنیم؟ لذا یک اصل بیداری از خواب قفلت نسبت به هر امری که این قفلت باشه این ارزنده است اما ای که اینجا امام سجاد علیه الصلاة و السلام با او تکیه کرده ان اینه و ای غزنا انسنت لغفلته به رکون علیه رکون الای یعنی اعتماد کردن به او اعتماد باب افتعال از کلمه آمد آمد یعنی ستون پذیرش ستون ستون قرار دادن یعنی چی ما معمولا به چیزی که میخوایم تکیه کنیم حتی فیزیکی جسمانی الان بنده که اینجا نشستم این خسته که بشم بخوام به پشتی سندلی تکیه بدم اگر این سندلی که روش نشستم قابل تکیه دادن نباشه، پشتی شکسته باشه، من ندانم قافل بشم، حواسم این نکته خیلی ظریفه که امام علیه السلام سنه قفله فرمود، خواب قفلت، جهالت نفرمود. یعنی یه وقت من میدونم پشتی سندلی من شکسته است و اگر بخوام تکیه بدم از پشت میفتم و کلیم آسیب میبینم ولی یادم میره، قافلم. مثل آدمی که چورت میزنه ببینید الان بنده اگر اینجا نشسته باشم یه ظرف آتشی بقیل لص من باشه در حالت بیداری خب من دستم تو آتش نمیبرم و میدونم آتشی که میسوزم ولی اگه خوابم برد قافل شدم ممکنه در اصل قفلت خواب دستم بیفته تو آتش چرا دستم سوخت چون قافل شدم توجه پیدا نکردم من میدونستم پشتی من پشتش شکسته قابل تکیه دادن نیست ولی غافل شدم یه دفعه تکیه کردم افتادم امام علیه السلام میفرماید انسان اگر به عقلش به جانش به فطرتش به نهادش به تعالیم انبیا و اولیا دقت کنه میدونه شیطان قابل اعتماد نیست انسان به وعده دشمن که اعتماد نمیکنه انسان به دشمنی که بناش دشمنی و کلک زدنه که وسوق پیدا نمیکنه ولی قفلت باعث میشود که این اطمینان رو پیدا کنه و این اطمینان پیدا کردن که در اثر قفلت حاصل میشه نتیجش چه میشه انسان به چیزی تکیه میکنه به جای اینکه تکیه کرده باشد کمک گرفته باشد بهره ای از او برده باشد زرر بیشتری میکنه لذا امام علیه السلام میفرماید خدایا از این که من غافل بشم و بخوام به شیطان اعتماد کنم از تو میخوام منو بیدار کنی و ایغز ان سنت لغفلته به رکون علی اینجا تقاضا دارم باز به دو نکته عنایت بکنید یک به شیطان نمیشه اعتماد کرد افراد خائنی که کارشون تسویله کارشون کیده وقتی میخوان کید و تصویل داشته باشن میشه پذیرفت که من به وعده‌هاشون اطمینان پیدا کنم پس اونچه که عوامل شیطانی چه به صورت وسوسه درونی از طریق هوای نفس من چه به وسیله عوامل ناباب بیرونی دوستان ناباب و عوامل منحرف کننده مطبوعاتی و فیلم و غیره و غیره که میخوان مرا به راه شیطان بکشونن به اینا نمیشه اعتماد کرد اینا کارشون جز شیطنت و مرا از حق به در بردن چیز دیگری نیست اما نکته دوم خدایا بیدارم کن از این قفلت خب بیدار کردن از قفلت الان ما خواب جسمی و بیداری جسمی بنده فرض کنید تو این اتاق میخوام یه نیم ساعتی استراحت کنم حضرت عالی بیدارید به شما میگم که من نیم ساعت میخوابم ولی سر نیم ساعت از شما خواهش میکنم منو بیدار کنید چون کار دارم فوت میشه باید به کارم برسم شما سر نیم ساعت میایید تکونم میدید عصبانی میشم گوش نمیدم آب به شورتم میپاشید معذرت مخوام پرخاشکری میکنم سخن ناسزا به شما میگم چندین بار شما خسته میشید میرید. من هم خواب طولانی کردم بعد از چند ساعت از خواب بیدار میشم به شما میگم چرا من بیدار نکردید میگه من چند بار بگم شما که گوش نمیدید حالا این مثال خواب ظاهریه اما خدا چقدر پیغمبر فرستاده ما رو از خواب غفلت بیدار کنه خدا چقدر امام قرار داده این همه زحمتی که امامان کشیدن یک امام ما به مرگ طبیعی از دنیا نرفته یا مسموم شدن یا تو میدان جنگ کشته شدن چقدر تو زندان ها اینها قرار گرفتن یاران اونها چقدر از صحابه امه زندانی بودن شهید شدن آواره شدن تبعید گشتن از این روستا به اون روستا از این زیر زمین به اون زیر زمین جرمشون چی بود میخواستن مردم رو بیدار کنن میخواستن عوامل قفلت رو به مردم بشناسسانن میخواستن لقصه های شوم دشمنان کمال انسانی و دین رو به مردم معرفی کنن اونا تحمل نمی کردن. ما نسبت به اینها جواب دادیم که بیدار بشیم خواستیم که بیدار بشیم یا نه لذا اینجا وقتی میگیم خدا یا ای غزنا انسنت این دو طرف داره یه طرف امداد پروردگار یک طرف خواست ما که حتی خواست ما در امداد پروردگار هم تأثیر داره به این معنی که شما بخواید که خدا کمکتون کنه مثل این که بلا تشبیح من از شما بخوام که منو بیدار کنید من بخوام حالا اگر از خدا این درخواست رو بکنیم مسلما خداوند هم انایات شو شامل حال ما میکنه عوامل گوناگونی خدا در سر راه آدم گاهی در عالم خواب خواب میبینه یا عامل بیداری میشه گاهی نگاه به زندگی یک انسانی میکنه دروی تحول عجیبی ایجاد میکنه گاهی کتابی سر راهش قرار میگیره این کتاب رو مطالعه میکنه دنیای درونش منقلب میشه بیداری خود یک ارزش است که انسان اگر بناس حرکت کنه باید بیدار باشه انسان خوابیده متوجه حقائق نمیشود. سرگرم شکم و شهوت و تعلقات دنیایی شدن حقیقت جان روح ما را به خواب قفلت فرو میبرد لذا از خدا بخواهیم ای غزنا انسنت القفلت به رکون علی ادامه این فراز و احسن به توفیق که آوننا علی و احسن خدا یا به نیکوترین وجهی به توفیقه کرد با توفیقی که تو فراهم میکنی اوننا یاری کردن ما را علیه بر علیه او یه وقت اعانت علیه داریم یه وقت اعانت علیه داریم همونی که ما در ادبیات فارسیمونم میگیم بر او هستی یا با او هستی بر او هستی یعنی در مقابلش یه وقت هست یه عواملی هست اینا باطلن ما نمیپذیریم قبولشون نداریم بر علیه اونها در مقابل اونها جبهه میگیریم و میستیم اما یه وقتی هم کسانی رو موافق میدونیم موافق میپذیریم و احساس میکنیم که کمک و راهنمای ما هستن لذا با اونها بودن رو ما میپذیریم ما وقتی با این توضیحاتی که امام علیه السلام برای ما دادن خب این مطلب رو به عنوان یک مسلمان پذیرفتیم که شیطان بر علیه ماست پس ما باید بر علیه شیطان بشیم اگر میخوایم رشد کنیم در جا نزنیم نباید همراه شیطان بشیم باید بر علیه شیطان بشیم از جمله عواملی که هم این فهم را تداوم میبخشد فراموش نکنیم ما دشمن شناس باشیم بین دوست و دشمن اشتباه نگیریم اگر میگریزی ز بیگانه بگریز چرا زین یار آشنا میگریزی شیطان میخواد عوامل بیداری رو از سر راه ما برداره چون نمیخواد ما بیدار بشیم ما آیا کمک می‌کنیم به شیطان که عوامل بیداری رو برداره یا در مقابل شیطان به کمک عوامل بیداری میایستیم امام حسین علیه السلام در مقابل های یزید و عمالش که جز فساد و بدبختی برای جامعه اسلامی به بار نمیآوردند حضرت بر علیه یزید برخاستند ولی اون همه مردم شام و کوفه که همراه یزید شدند اونا باید له یزید می یا علیه یزید خب نادانی، جهالت، غفلت، هوای نفس عوامل گوناگونی دست به دست هم داد به جای این که بر لح یزید باشن بر علیه یزید باشن له یزید شدن خیلی وقتا ممکنه غفلت ما را بگیرد به جای اینکه بر علیه شیطان باشیم خودمون آب با آسیای شیطان بریزیم و بر له شیطان باشیم لذا اینجا میگه خدایا کمکم کن توفیق به بهترین شکل از توفیقت با توفیقت ما را در برابر او به بهترین وجه یاری بفرما پس یاری رو خدای از تو میخواییم به ما بکنی پس ما میخواییم اما با توفیقت یکی از مطالبی که باز در فرهنگ دینی ما خیلی روش انگشت گذاشته شده اینه که خدا توفیق بده خدا موفقت بداره خدا انشالله شما رو بهرمند کنه این دعا ریشه قرآنی و روایی دارد همون جوری که در بحث‌های قبلی هم اشاره به این قضیه کردم ما میتونیم در زندگی روزمرمون مثلا فرض کنید جبری فکر کنیم تفویزی فکر کنیم نه جبری نه تفیزی جبری اینی که بگیم ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم همه کارا دست خداست این رو قرآن و دین و عقل نپذیرفته تفیزی این که بگیم خداوند ما رو خلق کرد دیگه هیچ نقشی نداره همش دست ماست اینم عقل و دین نمیپذیره بین این دوتا چیز خدا به ما اختیار و توان داده با اختیارمون میتوانیم کاری بکنیم که انایت خدا لطف خدا شامل حال ما شود تا ما را در مسیری که بناس کار کنیم موفق تر بشیم و نتیجه بگیریم کاری که در این فرازهای دعا به عنوان درخواست از خدا خواستیم که برای ما مطرح بشه چی بود این بود که و به ما نکائده به خدایا ما رو دانا گردان که چجوری در مقابل هیله شیطان ما محیله گری کنیم و الفهمنا ما نعد له به ما الهام کن ما اون امکاناتی که باد فراهم کنیم اونا چیه این امکاناتو فراهم کنیم و نا ان سنه الغفله رکون الی خدای ما رو بیدار کن از این خواب غفلتی که نکنه به شیطان اعتماد کنیم شیطان قابل اعتماد نیست حالا و احسن به توفیق که بتوفيقک اوننا علی پس در مقابل همه این کارهای شیطان توفیقی بده مددی برسون که با اون توفیق تو شرایط فراهم شود زمینه مهیا گردد با این شرایط و زمینه که توفیقش تو فراهم میکنی ما رو یاری کن که بتونیم در مقابل شیطان بیستیم یعنی همه اون کارهای قبلی رو که ما لازم است در مقابل شیطان بکنیم اعانت و یاری تو شامل حال ما شود که در مقابلش قرار بگیریم ببینید اگر یک شاگردی در کلاس درس به استادش میگه استاد منو یاری کن کمکم بفرما، توفیق برام فراهم کن مثلا اجازه بده در فلان کتاب خونه من بشینم به فلانی زنگ بزن که سوالات منو جواب بده از فلانی شما دستور بده و بخوا که فلان ساعت منو بپذیره اینا همه است که استاد برای شاگرد فراهم میکنه ولی اولا شاگرد باید از استاد بخواد ثانیه اگر یکی دوبار خواست استاد برایش فراهم کرد قردانی نکرد و دنبالش نرفت خب مسلم دفعه بعد استاد برایش این رو فراهم نمیکنه لذا اگر میگیم خدایا احسن به توفیقه که آوننا علیه هم احسن را این یاری به نیکی ترین وجه هم توفیق یاری که خدا بده نکنه اینا رو با دست خودمون از بین ببریم یعنی کاری بکنیم خدا نظر رو از ما برداره دیگه دعاهای ما هم به استجابت نرسه دیگه با فرموده مولا امیر المؤمنین علیه السلام در دعای کمیل اللهم مغفر از زنوب تحبس و دعا. خدای از اون گناهانی که دعا رو حبس میکنه بلا تشبیه بگم کاری کردم اصلا دیگه این صدای من به گوش معلم نمیرسه حاضر نیست گوش بده به حرف من من گناهی بکنم هرچی بعدش دعا کنم درخواست کنم خداوند توجهی به من نداشته باشه پس زمینه این کارها رو فراهم کنم که در م... با خدا آشتی کنم از خدا طلب یاری بجویم خداوندم الله یاریش و شامل حال من میکنه که بتوانم در مقابل شیطان بیستم ادامه این دعا نکات زریف دیگری رو امام علیه السلام اشاره میفرمایند که که الله در جلسات بعدی پی خواهیم گرفت و الله علا سیدنا محمد و آله تیبینم تاهرین المعصومین و سلام علیکم